نبی و آل بحثمون در آخرین بیت باب تعجب بود گفت و فعل هازل باب لن یقدم ما مأموره و وسلغ بگیم الزمان گفت فعل این باب به خاطر جمودش و به خاطر ضعفش و به خاطر جاری مجرای مسئ بودنش معمولش بر اون مقدم نمیشه. و معمولش هم باید متصله به فعلش باشه. بینشون هم چیزی فاصله نمی. بعد عنوان کرد و وصل هو به ظرف فعل او به حرف جدول مستعملان گفت اما فاصله شدن جدا شدن معمول فعل از فعل و فیل از مفعولش به ظرف او به حرف جر به وسیله ظرف یا به وسیله حرف جر که منظور جار و مجروره مستعملون استعمال شده در بین عرب ها نزمن و نسلن اما ولخلپ و فیزاکه استقرر استعمال شده و اختلاف در این خصوص واقع شده وجود داره اختلاف در چی واقع شده ببینید مطلب ها میگه استعمال شده که فاصله شده بین فعل تعجب و معمولش یعنی احبب ایلینا انیکون المقدما رسیده و از اون طرف ما احسن فل حیجائه لقاء ها رسیده از امر ابن مهدی کرب رسیده که جزء مخضرمیین است خب از اینها رسیده مستعملون پس اختلاف در چیست میگه ولخلف و فیزاکه استقر خلف در این مطلب هست یعنی اینکه در نظم و نصر به این شکل فاصله به ظرف و جار و مجرور رسیده آیا قیاسی است یا قیاسی نیست عده گفتن چون در نظم و نثر رسیده تعدادشان کم نیست پس بنابراین چیه است عده گفتن نسماییه قیاس؟ نمیشه کرد چیزی بین اینها فاصله قیاسن غلط است. و الخلفو فی است. درست؟ عنوان کرد. و فعلو هاز الباب لن یقدم معمور او علیه و وصله به الزما یعنی إلزمن بخ... بلا خلاف فیه ما بدون اختلاف در این دو تا یعنی در این دو مورد و فصلهو به ظرفن او به حرف جرلن مستعمل و نزمن و نسرن عرب الموسوق به عربیت هم نزد عربی که وسوق به عربیتشون هست نزمن و نسرن رسیده که قولهی و قال نبی المسلمینه تقدمون و احبب علینا انیکون المقدما احبب علینا میبینیم که چی شده؟ احبب بین او و بین انیکون المقدما فاصله کرد. چی بازه بکرده؟ الینا که متعلق به خود احبه احبه الینا ان یکونل مقدم یا اون کلامی رو که از آقا امیر مثال زدم اعزیز علیه ابل یقزان ان اراک سریعا مجدلا گفتم حصف حرف جرلم اینجا میبینید بوده به بر سر ام حرف جلر احبب این با جاره لازمه زایده اینجا چی شده جایز هست هستش. هم توی این افتاده هم تو کلامی که از آقا امیر المومنی نه. اون مال احبب که فاصله کرده اینم مال ما افعاله و قول امر ابن معدی کرد ما احسن فیل حیجاه لغا بین ها که مفعول احسن است فیل حیجاه که متعلق به احسن است فاصله کرده ول خلف و, فیزا کل فصل و, خلف و خلف في ذاك الفصل و اختلاف گفتم خلف اسم مصدر اختلاف است و خلف فیزاکل ذاك الفصل هل اولا که آیا جایز است بیاسن یا نه استقرار استقرار دارد فزه اول جرمی و جماعتن هلل جواز بعضیا مثل جرمی و جماعتی رفتن به سوی جواز. به خاطر اینها که اینها میگن چی زرف و جال و مجلور بسعت داره ول اخوش و ول مبرد ایل المن اخوش و مبرد رفتن به سوی منع و گفتن غیر قیاسن جایز نیست لعنه هما جره یا مجره امسال چرا؟ به دلیل گفتیم فخوه و یو مسلا چون اینها جاری مجرای چی هستن مسل هستن چون جاری مجرای مسل شدن زربل مسل رو تغییر درش بگیر نمیدن عین لفظ رو به کار میبرن در زربل مسل اینها چون جاری مجرای زربل مسل شدن عین خودشون چیه به کار بردنش عین خودشون فخوه و اینا شبیه به مسل هستند تو مبحث بعدمون نعمه و بیسه خواهیم خوند. اونجا توضیح این مطلب میدیم به اینجا اشاره هم خواهیم کرد چون اینها جامعه دن جاری مجلعه مسل هستن لذا تغییر در سیاق کلام داده نمیشه این جا به جایی توی صورت نمیشه این مطلب رو تو ذهن داشته باشید ولی در کتاب خودمون سیوتی یک تو باب کانه تو کانه زایده که از کانه بود گفتی؟ و قد و, و کانفی هشون کما کان اصحه علممم تقدمه که اومد بین ما و بین اصحه مجره مسل بودن رو براتون خواهم فیدانه غیر و متسلفین نعمه و به سر رافعانه اسمینه اسمای نه نعمه و بهسا مبتدا هستند. نعمه و بهسا چیه؟ مبتدا هستند. فعلان خبرشونه. نعمه و بهسا فعلانه. نعمه و بهسا دو فعلند یعنی از نظریشون فعلند اسم نیستند. دلیلش هم اول کتاب یادتونه گفت به تا فرزه و عدت و یفعالی و نیره بلنده فیرانی انجلی یه مثال زد و نعمت آه کسی چرا گفت نعمت گفت های تهندیس پشت آخر میشه پس بنابراین چیه فعنانه فعل. قیل رو متصرفه اینه دو فعنی که متصرف نیستن دیگه مزاره و عمر و اسم فعال و اسم افعال و, و اینا نداره جامدن غیر متصدفه این صفت فیلان پس نعمه و بهسه فیلان دو فیلان که این صفت رو دارن غیر و متصدفه اینه رافعانه رافعانه خبر بعد از خبر برای نعمه و بهسه تکیه کرده رو مقتدار به معنای حال استغدارم از اسم رو چگاه کرده نست باشه عنوان مست نعمه و بهسه رافعانه اسمینه رفت میدن این دوتا تا بگو دو اسم رافعانه اسماعیله خبر بعد از خبر میتونه البته این رافعانه صفت فعلان هم باشه تکی کرده باشه به موسوف به عمل کرده باشه اون موقع بین صفت و موصوف مفدا خبر چیکار کردن بگید واسه دیگه رافعان اسماعیله خبر خبر بعد از خبر اسمین مفعول رفت میدن دو اسم رو منظورت اینه این که رفت میدن دو اسم رو یعنی نعمه یه اسم رفت میده به عصر هم بکید یه اسم رو. نه اینکه هر کدومشون دوتا اسم رو رفت میدن نعمه و به عصر رافعانه بکید اسمه اینه مثلا این که بکیم زید و هم دافعانه درهمن اینه زید و هم فر وقتن دو درهام یعنی چی؟ به هر کدومشون یک درهم دادن نه اینکه که هر کدوم دو درهم نه این زیدون و همرون دافعان درهمه اینه یعنی زیدون دو تا رو همدیگه شدن یکی دافعانه دفت کردن پرداخت کردن دو درهم یعنی یکی این دو نیکن اینجا رافعان اسم اینه یکی لفت نیکن زیرا مخصوصه به مرخ مرفوعه به این فعل مخصوصه به مرخ خودش ترکیب خواست داره یا ممتبه محخره یا خبر از برای مبتبه واجبون هست از این ربطی به نعمه و به اصحب با باب و و به اصحب اصلش نعمه بوده و به بوده و جایز از در نزده بنی تمیم تو کتاب شرپسری فیلو میگه جایزه در نزده بنی تمیم هرچی که بر رزم فعیلویات و این و هم حرف حلق باشه جایزه که بر وزن‌های مختلفی بیاد یکی از وزنش همینه وزنه نعمه به اصد شهده رو میگن شهده در این دو لغت همه عرب ها با بنی چی شدن؟ همه باز شدن در دقیقه کلمات خیلی در این دوتا بر لغت اومده نزد همه عرب ها نعمه به اصد کلام، نعمه بوده، ده بوده، بر وزن فعیله بوده بودن. پس اگه گفتیم فعل بر فعیله میاد، اینجا هم بر فعیله بوده. یعنی تنبیهی ها اجازه بدن که چی گفته شه؟ نعمه گفته شه، ده گفته شه چون حرف عرب وصل بشه بر فعیله هم هست. دوستا، شهدا رو که میگن چی؟ شهدا الله و عنه بود، شهدل خب؟ این دو لغت همه عرب ها بنی متفق شده هم لغت بنی تمیم رو قضی رفت نیمه و بیسه و ماجره مجره نیمه و بیسه رئیس یکی مرد کیزه. و ماجره و مجره همه و, و, و, و, و, و هر چی که جای مجره این دوتاست جایی مجره این دوتاست یعنی دو چی؟ یعنی مثل این دوتا در مرد رو زن بکنی مثل ساعة مثلا حد بزار نا حد بزار و ماجره و مجره همه و جای این ها فرمده و زمه جایی مجرد اینها در و زم نه در چیزهای دیگه من بیان میکنه من حبزا و ساعه و نحوه ما از مانند حبزا و ساعه نحوه این دو تا مثل لاحبزا وزن فعوله که برای به کار میه آه؟ یا برای زم بکار و نحوه ما فعلانه خیر متصرفین نعمه و بیسن دو فعل هستن که غیر متصرفن نعمه و بحسن. چرا نمیاره نفرف اعلان میگه لدخول تا از ساکنت علیه ما چون تا ساکنه بگو بر اینها داخل میشون بیکن به لغاتن در همه لغت ها در همه لحجه ها پای ساکنه بهش چیه؟ داخل میشه نعمت مرهت و هندون در همه زمان ها چیه؟ همه لحجه ها یه حدیثی رو گفت با در اول که چی؟ من, من. من توزع یومن جمعهت فده و نعمت و نعمت میدیدیم با تاو سیوتی یک برگردی تو به تاقرالتر و عطس و یفعایی و اونه اقلالنه بیلونیم شد متصاد ادفاست بجایی دخول متصاد زمیر رفت به ما فی لغت حکاها الکسایی جو و این که زمیر رفت مثل واغ مثل زربو زربا زربنه زمیر واغ علف نون زمیر رفعی متصل میشه بهش بی کل لب بی در یک لحجه ای که حقاقا های کسایی حکارت کرده اونو چی؟ کسایی که اون هم باز محق چه زمیر رفعی به چی میچسبه؟ به فیل واقع زمیر هست در فیل علف زمیر است در فیل آه بعضی اشتباه هم میکنن مثلا کلمه مثل زاربانیه فکر میکنن علف چیه؟ نسوی که علف حلامت ایراغ و فایل درش چیه مستطره علف اگر فایل بود در حالت نسبی جدید تبدیل پیدا نمیکرد به نمی چی؟ یا بینه اینه یا واقع اگر فایل بود در حالت نسبی جدید نمیشون زار بینه هم امند مستقی چرا چون زمیر اسمه مبنی هست قابل تغییر نیست فيلو اتن حکا هر کسایی، تکایت کرده کسایی نه اما رجولاین، نه مثلا از زیدان، نه اموم رجالان، مثلاً از زیدون. خوب؟ نه اما رجولاین، نه اما، نه اما رجولاین، نه اموم رجالان مثلاً از زیدون خوب نه اما رجولاین نه اما نه رجالان از زیدون و همینطور بقیه نقد باشه و ذهب الکوفیجون معلوم میشه که این نظری کی بود نظر بصری ها ذهب الکوفیجون الا ما نقل از ها و انهم بی مسائل خدا. نگه رفتن کوفیگین بنابر آن چه که نقل کرده از او را از ها، یعنی نحوی ها الهم از کوفی ها فی مسائل خلاف در مسائل خلاف بین کوفیگین و مصرگین یک کتاب بسیار زیبایی جناب آقای ابن الانباری داره در برکات دو جلدی خیلی زیبا به اسم الانتصاف الانساف فی مسائل خلاف بین کوفیگین و مصرگین که اومده ست مسئله و حدودن که بین کوفیگین و بسریگین هست و مورد اختلافیه اقوال دو طرف رو نقل کرده بعدش هم خودش انصاف داده که اقوال دا... کدوم علی انصاف بی مسائل خلاف میگه در همون کتاب این مطلب است. راست کنم من خودمان دیدم اول کوفیگون علی ما نقلهو علی از خواب انهم بی مسائل الخلاف عنهما رفتن عنهما اسمانه رفتن به سوی این که این نعمه و بیسته چیه هم؟ اسمن فه اصلا فرم نیستن الانه هما اسمانه دلیلشون هم این بوده من توی اول سیوتی یک این رو براتون نقل کردم ادعا کردن کوفی ها که بای جاره به از سرش در اومده بلجره و تنویم رنه دا و عل و مصندن لیل اسم تمییزون حسر منجه هر داخل شده بشی به یک نفری که زنش دختر زاییده بود بهش بشارت ببند به دختر برگشت گفت والله ماهیه به نعمل ولد والله ماهیه به نعمل ولد نصرها خوکا و درها سرقه گفت خدا این بچه بچه خوبی نیست ماهیه به نعمل ولد با رسای نعمل نفس روها اگر بخواد من رو از دفاع کنه یاری کنه باقید با گریه میتونه و بر روها سرغه و اگر بخواد به من نیکی هم کنه باید دوزده تا نیکی کنه از مال شوهرش الان اینجا شما میبینیم ماهیه به نعمل ولن یا به یک نفری که برای مال کندی سوار شده بود و به سوی محبوب خودش میرفت گفتن خیلی خوب بری میری برگشت گفت نعمستهی رو على بیسل ایر گفت نعمستهی رو على بیسل ایر مسیر رو على بیسل ایر گفت بهترین رفتن در بدترین مرکر على بیسل ایر این دوتا می‌بینیم که حرف جر داخل شده خب جرم از خصوصیت چیه؟ اسم کوفی. گفت خب حالا نگاه کنیم اگر عمر ما دایر شد به فرق به الان بسری ها میگن خویل است به دلیل وجود تا کفیه ها میگن اسم است به دلیل وجود حرف جر با و هلا خب این ما همه اسم باشه هم سه باید در دلیل یکی از اینها چکار کنیم تسرگفت کنیم و دلیل دیگری رو تفزید دلیل پسری ها هم اولا زیاده در همه لقات تا داخل میشه کم نیست و ثانی قابل توجیه به اسمیت نیست مثلا میگیم نعمه اسمه بلی مثلا خیل مقدر اینجا از تابش در منه. هیچ راهی برای توجیهش نیست اما در مورد اون دوتا توجیه کردن چی گفتن؟ گفتن این طور بوده این طور بوده بوده ماهیت به ولدن مقولن فیه نعمل ولد از کش بوده ماهیت به ولدن بیا بوده اسم ما به ولدن دار زاهده ولد خرارش مقولن فی صفت ولد نعمل ولد ناستاهل مقهود یعنی نیست این بچه ای که در خصوص او گفته باشن نه مولا بل چه بچه خوبی؟ همچین چیزی در مورد این دختر؟ مند. اول محصوف حصف شده آدم محصوف حصف شده جاش جشبشی نمیشه یا نه؟ بله بسمه رنناس و دواب به بله انعام مختلفون الوان و خود ببینید سمفون مختلفون توبا بسم محصوب هستونه صفت جاش نشسته بعد صفت که مقول فیه بوده ماده قول بوده حذف شده مقول قول جاش نشسته حضب قول و بقای ماده قول حضب و بقای مغولش، محکیش مغولش به جای اون زیاده در عربی اینو منه جاش نشسته باشه؟ من مغور قول الان و اصلا بای جاره بر این بر نایمده بوده بای جاره بر ولاد ولد در اومده بوده اسمم. الان اون هم هست شده اون یکی هم میگیم بوده نعمت سهی رو الا عیرن مرکبن مرکبن مغورن فیه به اصلاحیی دون بینیشه اونها رو توضیح کردیم یکی دوتا را دلید اولی ها در بغای خودش راقی مد زعب نقل اول از خواب و مسائل خلاف علا انقوم ها اسمانه حالا ابن اسفور, ابن اسفور، اون از اون از گفته بین کوفی ها و بصری ها اختلافی اصلا می... میگه عجب آه این بسری ها میگن فعره به دلیل نعمت کوفی ها میگن اسمه به دلیل به نعمالورت علابه سلغیر چطور شما میگی؟ میگه قال ابن اصفورن چون یه مقدار هم مشکل داشته نسبت بده به قائلش که اگر شونه نفذی گفته که ماله کیست قال ابن اصفورن نمی اختلف اهدون یعنی اهدون من الوستیین اول کل بگیر فی انا هما فیلان گفته اهدی اختلاف نکرده که نعمالورت چیه؟ فعله نه بوده در عصد بوده تبدیل شده به نعمه و در عصد یختلف احنین فی همه و ما فعلانه میگه پس چی؟ میگه و این نمل خلافه بعد اصناده همائلن فایل گفتم خود ما و خود به عصد فعل. ولی موقعی که فایل بعدش میاد ار رجل نعمه نعمل عب نعمل مولا و نعمل نسیر وقتی فائل بعدش میاد در این صورت اختلاف پیش میاد وصری ها میگن به فیلیت خودش باییست نعمل فائل این فائلش وصری ها کوفی ها میگن نه نعمل رجل مثل تحبت شرنه علم منبول هر بگید جمعه است نه مر یه جمله فعلیه بوده مثل تهبت شرعه که یه جمله فعلیه بوده اولی کتاب تو بحث علم برگردی بسیتون تهبت شرعه اصم شد برای یک شاعر خاص جمله اسمیه و همونطورم هم اعراب شکالت میشود بگم بگم جا تهبت شرعه هل تو تهبت شرعه مرر که به تهبت شرعه الان نه مر هم شده برای معدهه اسم شده برای زم علم برای مده و علم برای زم و میشه مبتدا میه میشه مبتدا زهر میشه چی مخصوص بمرتش خبرش یه جمله اسمی حالا نگاه کنید قالت نسخوره لنگ از خلف اهدم الله ما فعلانه و این نمر خلاف بعد اسناده ما ماهی فاید. بعد از اینکه اینها اِثبات بدن به سوی فرد یا شدن. به فرد بسریون پس بسری ها یقولون غارق شدند نعمرج و سر بیرسرج به مواردان لذا جمله رو گفتن خبر مقدم زیر گفتن مبتدا به مؤخر جمله فعلیه گرفتن و ارجل رو هم الف خانش و الف تا به جنس گرفتن گفتن که عمومیت ارجل نیاز به رابط جمله خبر رو از به چون الفلام جنس داره آم نست مبتده هم داخلشه لذا پس پرانه دیگه نیازه به رابط یکی از روابط جمله خبر به مبتده دومیت که در جمله خبر باشه جملتان فعلیتان جمله فعلی هستند. جمله فعلی هستن مخصوص فرمتشون مبتده مرخل یا خبر مبتده نست ولی کسایی جن اما کسایی چی خواهد شده؟ ولی که زایی اسمان محکیانه. نه اسمیاتان محکیتانه اسمان محکیانه اسمان منظورش از اسمان یعنی چی؟ علمان دو اسم هستن که محکی هستن محکی یعنی چی؟ یعنی اصلشون جمله بودن؟ جمله فعلیه بودن سه تحقیت شرده؟ الان احرامشون چی شده؟ فکایت شده اسمان یعنی المانه محکیان اسمان المانه محکیان به منزله تعابدش الله مثل تعابدش الله که تو باب علم اونجا اصله ما از اصلشون که جمله فعلیه بودن نقل شدن و سم یبه ما یعنی جو الا علما سم ما یعنی جو الا و قرار داده شدن علم ا سم میاد به ما المد و زم ما مد و زم برای اینها اینها علم باغه شدن برای مدح و زم ای جو الا علمین للمدح و زم قرار داده شدن علم دو تا اسم علم برای چی منظورم اما علمی که منقول از چیه جمله است علم منقول از جمله مثل توبته شارق دیگه. بعد موقع نعمر رجل میشه مبتدا اسم. مثل اینکه بگیم تعبطه. الان من میگم تعبطه شروق قائمون. شما چهجوری ترکیب میکنید؟ میگی تعبطه شروق مبتدا؟ ها؟ قائمون خبرش. یا بگم تعبطه شروق ثابت ابن فلان. میگی تعبطه شروق مبتدا ثابت ابن فلان خبرش. حالا نعمر رجل زیدون بگو نعمر رجل مبتدا. الان الان برای نعره. آ ها میشه چی؟ خبره یعنی یه مقتده ها خبره اما مقتده یه جمله بریه هست رافعان اسمه اینه هستن دو اسمه ها یعنی فائله این ما یعنی دو تا فائل برمیدارن برای جفتشون یکی مال این یکی مال. ولی ما هیچ چیزی نداریم که رفت بده و دو تا فائل برده فائله این ما حالا چه شرایطی باید داشته بشن اون دو رسم؟ آه لیکن این مغارنه ای ان این مغارنه ای ان صفت اسمه دو اسمی که مغارنه و علف لامن یعنی چی یعنی دارایه علف و لامن مغارنه ای ان اون مزاقه اینه یعنی خودشون علف لام دارن مثل نعمال مولا و نعمال نسیر نعمال عبد اون مضافین لما ها <تصفيق> یا اضافه شدن ل ل به معنی اینا مضافین ادتور جای مقارنه سبب محصول میشه واسه لما یعنی الاما متعلق به مضافین ها فعل و فاعل و مطعون مضافین الاما ها که فاعلش آید به محصول هم یا اضافه شده باشند به سوی چیزی که مقارن است با الف نام است با الف نار. مثل نه دار المتقین تو قرآن داریم لعنع مدار المتقین یا بلبئس مسوا المتوکل متکبرین نبعس بلبئس مسوا یعنی جایگاه واسه این نقطه علمو تکبرین الان مسوا اضافه شده به علمو تکبرین دار اضافه شده به سوی علمو تقییم برای شو. او این لما قارنها مثال میزنه نگاه کنید خودش مثاله هون بگو کنه محقوق و بل کرما ممدود به خاطر ضرورت شعریه ممسوش نعمتوه اقبا یعنی آقبت یعنی چه خوب است آقبت کریمان اقبال کرما اقبا اضافه شده به حد کرما داره الفلام هست یا نیست خائلش اضافه شده به چیزی که داره نعم اقبال کرما اه. خبر مفتدای محسوسه یعنی مثاله نعم اقبال کرما بیایید پایین رافعان اسمینه فائله اینه لهمان مغارنه یه ال فاعلی که مغارنه با چیه؟ الفلامه این الفلامش چه نوع الفلامیه؟ دو قول درش دارن یکی الفلام جنس که من این رو تذیرفتیم و صحیح دانستیم و گفتیم حتی نعمرگجل خبر مقدم زید مبتلای معخر و جمله خبر چون این الفلام جمس رو داشته این حمومیت درش بوده مبتدا هم درش داخل بوده دیگه نیازه به رابط نداره مقارنه ای ال ال مقارنه با ال جنسی بعضی هم قایلن الفلامش الفلام عهده تحریفه الفلامش الفلام عهده و اشاره به زیدم داره که مخصوص به نلشه. و چون معادله با خود زیده تکرار شده انگار خود زید همین معبود بودنش یعنی این بار جانشین زید شده مثل الگارعت و ملغارعت که الگارعت و دوم تکرار شده و خودش شده رابط الگارعت و مبتدا ملغارعت و جمله خبرش و بعد بگم الگارعت و ما یه اسم ظاهر اومده خودش شده رابط این که اسم ظاهر خودش رابط بشه داریم در جایی که بعد تفقیم و تعظیم مثل غارت و مرخارم از خواب یمین ما از خواب و اما اما در جایی مثل اینجا در جایی مثل اینجا که نعمر رجال اومده و رجالش ادفلام عهده و هممعنای با زیده مخصوصه به مفه اینه تکرار و لفت نیست ادبه اصلا قبول ندارن و قول حقم این که درست نیست الفلام عهد رو نطازی رو سر بدن اشکالاتی که داشته و الفلام جنس اون جان کرد عل الجنسی گاته و هم همین نگاه کنید الفلام جنس دقیق دقیق اول چرا به این میگن مخصوص به مرد اینا رو باید یاد بگیرید چرا بهش میگن مخصوص به مرد بزید مخصوص به مرد این با الفلام جنس سیاقش درسته من وقتی میگم نعمر رجل نعمر وجلجی زهیدان اول با نعمرلاجون من میون جنس مرد رو چکار میکنم مرد میکنم میگم جنس مرد آنیست نعمرلاجون در این مده اجمالی من زهید هم چیه؟ دخیل از زهید هم جزه؟ همین جنسه بعد شما تا میخوای این رو عنوان بکنید که جنس مرد چجور شده زیبا شده عالی شده قابل مرد شده میگم زید یعنی زید یعنی از دین همه مندوهین مخصوص به مرد دوم میکنه یعنی اول ذکر شعر میکنم مدهمن جنس رو مرد میکنه بعد مفصلن و مبینن زهد رو مشخص مونه تو کتاب باید هم خوندید ذکر و شه مبهمن سن و مفصلن اوغه اوغه هشد رو اگر یک چیزی رو انسان اول مبهم بعد مشخص و مبیننش کنه راحت تر تو دل مخاطر می‌شینه تو زهنش میشینه. اول جنس رو مهد بعد در بین جنس ذکر رو مخصوصه به مهد میکنی یعنی میشه ذکر خاص بگید بعد از آم ذکر خاص بعد از آن خیلی اهمیت رو می فهمنه. مثل تنست زرور ملاحکت و و رو, رو داخل ملاحکه است. برای بار دوبارم که ذکرش کرده تنست زرور ملاحکت و و رو نشون میده چند پله از ملاحکه دیگه چیه؟ حالاتره که ذکر خواست شده بعد از مثل که مثلا من برگردم بگم علمای اسلام به خصوص یا بگم نه ره برن. و عبر اندلاب رو خواستش کردیم و علاقان سکرش اهمیت رو می رسونه. علم جنسیت نه و نعمل مولا و نعمل نسیر مخصوص به معتش این نعمل مولا و نعمل نسیر و اللا اون مضافین لما قارنه ها یا اضافه شده باشن به چیزی که مقارنه الافلامه این مثالش رو من زدم لنه امدار لبه لبعث مسول متکبرین این تو قرآن هست اون مضاف لما ها یعنی ل لمزافن لما ها یعنی خودشون اضافه شدن به چی؟ به یه چیز دیگه اون هم باید برای الفلام نیست بلکه اون اضافه شده به یه چیز دیگری که داره الفلام مضافین فائلش یعنی فائل نموابه س اضافه شدن لموضافن به یک مضافی که اون مضاف اضافه شده لماغارنه ها به چیزی که مقارنه با 1 فلان مثل چی؟ که نغم اقبل کرما مثال برای مضافین لماغارنه ها و این مثال برای مضاف مضافین لماغارنه ها مثال و نه ابن قخت قه غیرم مچ از زدن من خوح من مقردن من حا عی هم جمع حماهی بند همشی غیر منصرف اینجا و به خاطر ضرورتشی چی شده؟ منصب شده من حا عی حسامن و مفردن منسوق قراعت اصحشه روایت اصحشه و روایت رفعش بسیار ضعیفه و اصلا قبول نشده در دوابین این شاعر دیده نشد لذا حسامن مفردن اگر حسامن مفردن باشه و روایت بشه ترکیبشه نگیم برای روایت صحیح چیه؟ حسامن مفردن من همائی قلا رواكن نعمه ابن نعمه اضافه شده به ابن ابن اضافه شده به قوم نیر ابن خودش الف نداره اضافه شده به اخت اونم نداره القوم الف لام نعمه ابن اخت القومه زهیران زهیران مخصوصه ماده نعمه ابن اخترقوم جمله خبر مقدم زهر مطبع محقص یا نعمه ابن اخترقوم یه جمله فیلیه خوبت و حیران یه جمله اسمیه خبر مطبعه قیرم و کذبن حال است از برای ابن حال است از برای کی؟ ابن میشه برای ساحل نعمه او به احساسی آورد حال آورد هزا حال آورد میگه؟ چه خوب است پسر خواهر این جماعت این خوب که زهیر است در حالی که پسر غیرمکذبه این یعنی هیچ کس اون نسبت به کذب نداده کذبه هون ضد به صدقه هونست کذبه هون یعنی چی؟ حکزی کرد نسبتش داره به کذب غیرمکذبه این یعنی در حالی که هیچ وقت او نسبت به کذب نداده هیچ کس نگفته این دروغ میکرده روایو این حساماً مفرداً من حمائدی صحیح نصب بشه و حساماً حسام یعنی شمشیر حال است از برای عمو ابن مختل حال است از برای مثل به دیگری و مفرداً صفت حسامه در حالی که شمشیری است مفرد از همایل یعنی جدا شده از همایل از غلاق بیرون کشیده شده شمشیر آخته مفردن هم صفت من همایل متعلق به مفرد اما اگر اینو بخونیم حسامن مفردان باید بگیم بوده چی؟ خوبه حسامن خبر بگیریم برای مفرده محضور شه از بدن تقدیره و این سیاخ هم در حبی مرسوم نیست خسامن مفتادن من همه درست مغارنه ای ال او مزاخین لما قارنه ها چنه ما اقبل کرما و یعرفان مزمرن یه جور دیگه هم فاهم می در این آیارتون زمیر می که برمی گشت به تمیز بعد یکی از موازه رو بزنه به مرجعه می ترخیل نفسی رو رتبه لگرفان مزمرن یفسترهو نمیزن کنه امقاومن محشرو لگرفان عطف بر است عطف بر رفعانه رفعانه رو حالا نهت کردیم یا خبر میشه آیا فر رو کرد به جای شفه فر بله مخرجل حیمن المیت و مخرج میت منر بر شفه فر میشه حد کرد فر اشکالی ولی مقیرات صبحا فعصف نبگی نبگی و یرفعان مزمرن یرفعان فرفای مزمرن مفعولش یفسر هو موقعزن یفسره هو فعل و مفعول ممیزون فاعلش و ضمیر یفسره هو برمیگرده به مذمرا ثابته جمله صفت است به موصوف مثالش مثالو کنے مقومن معشرو مثالش مثل این مثالو کنے مقومن خبر مبتدا محسوب در متن ضمیر غو فاعلش مستتر او من و مرجع ضمیر فاعل که یکی از مواضيع ضمیر مرجع متأخر این معشرو هو مبتدا مؤخر نوع مقومن خبر مقدم یا معشرو خبر مفعولی واجبو است ها خبر مبتداری واجبه با. پس گفت درکیفتره دیگه معشر یعنی جماعت اول کتاب گفت کلامونا لفظ و مفید و این کس تقیم زید پشتش گفت اوی معاشرن نه دیگه آه کفت کلامونا نه یعنی جماعت نه بیاد بایی و یرفعان مزمرن مستترن و حت میدن به یک زمین مستتر و جوری که بیرون بیا هم نیست مستطرم. یا فسته او که تفسیرش میکنه چی؟ یک ممیز زمین مبهم که مقا من معشر نه من معشر او ال معشر او رو گفتیم مخصوص به م. قومن من تمیز از در فاح نمیند یه از قرآن میزنه به اصال ظالمینه بدلن به اصال ظالمینه بدلن الان به اصال تقدیر بنفسی تقدیره تقدیره به اصال خوبه یه خوبه توش مستجر بدلن ظالمین زرگیت ابلیس زرگیت و ابلیس به اصحاب هوبا بدلن لزالمین زرگیت و ابلیس برای اون هوا بریمیست البدل چون برمیگردی به چی اون هوا به بدلن میگرده دیگه او به زمی به مرجعه زرگیت و ابلیس هم اگر تو آیان نگاه کنید مخصوصه به زمش بوده و هرس شده پس زمیر داخل بهسه کائلشه بدلا منصوب و تمیزشه و مفسر این زمیره لز اومده فاصله کرده بین بدلن و بهسه تمیز و بهسه هیچ اشکال هم نداره چون لز ظالمین صفت بوده درست حالا که مقدم شده میشه چی؟ حال از برای بدلن اشکالی توش نیست حتی اینجا حتی اینجا میگاه کنید لزالمین اومده چی فرصه به دین بدلن و درست همین امروز خوندیم که ما احسن فیل حیجاعه لقاها تو باید و افعله پرجم. مبرد که یکی از نحوی هاست اومده به همین آیه استناد کرده برای اینکه اونجا رو درست کنه گفته به هم مثل چیه؟ فعله تعجبه اینجا ببینید لز ظالمین اومده به این منصوبش تنیزش و به خودش چیکار کرده؟ فاصله کرده اونجا هم میتونه فعله هیجا چیکار کنه؟ فاصله این استدلال رو همت دار کرده ابلیس هم نایده؟ اون چیزی که ما گفتیم جامیشین اون مخصوص بزن میشده که توی آیه هست شده و ما ظاهرش کرد. به اصل ظالمینه بدنه وقد یستقناعنه تمیز میگه گاهی اوقات میشه که تمیز دیگه آورده نمیشه نمیشه علمه به جنس زمیر چون زمیر داخل اون رو ما جنسش رو میدونیم میدونیم چیه اولی کتاب سیوتی خوندیم قال رسول الله علیه و آله وسلم مثل قول پیغمبر بر نقل این کتاب گفته من توزع یومل جماعت من توزع یومل جماعت من شرطیه توزع فعل زمین فایلش یومل جماعت ظرف متعلق توزع این جمله فعل شرط من و علل اثر بگو خبر مقدم هم هست من تب از زهر یومت جمعهت فبه ها. این ففای جزای شد ففای شد و به ها بوده فخوه آخزون به ها فخوه آخزون به ها پس او آخز است به ها ها برمیگه به سنت پس او آخز است به سنت ما این؟ فهوه به ها یعنی فهوه آخذان به ها او چسبیده به سنت ما هر کسی که روزه بگیده روز جمعه و نعمت و نعمت یعنی و نعمت سنتا رو گفت الوزو دیگه نگفته و نعمت سنتا الوزو چون زمیر به ها رو بگشت به سنت معلوم بیده زمیر داخل نعمت رو بگه به سنت بگید تفسیرش نگرد چون زمیر به ها رو کی بر بگشت به به سنت یعنی فقوقع آخزون به سنته اون به سنت رسول خدا عمل کرده ونه امت یعنی ونه امت زمیر یه توش مستطل میخوره به سنت دیگه رو به درمان توییز بریده چون معلوم بوده نه امت سنتاً باید میگفته از وضعه دیگه نه دنبالاش هم داره من اختصلا بله غسل کسی غسل کنه در روز جنبه غسل افضل است از غسل زمیر داخل نعمت به کی خود به سنت خود به چه دارید؟ دلیل؟ به دلیلی که زمیر ده ها اونجا قدیمه شده بود تطمتون حکل اخفش و انناسن من العرب یارفعو هرنه به نعمه اینم به عنوان تطمی نعود میکنه های نعمه او همین چهار تاست الف لندا مضافه به الف لندا مضافه به مضافه به یا زمینی که مفصل به تمیز باشه اینم به عنوان تطمی نعود میکنه هکل اخفش رو شکافت شد اخفش انهایف من everything ان من یک دسته از ارفا یرفعون بنعمه رفع میدن با نعمه انکر از نکره رو درست شد میگن نعمه رفت میدن به نکره یرفعون بنعمه انکر تا مفردتن مضافتن در حالی که اون نکره چیه مفرد ها یا مضاف هیچ فرقی نمیکنه معن رجلن باشه یا معن غلاو رجلن باشه یعنی نه خودش الفلام گفتن شرط بشه نه مضاف الی نمیشه الفلام شرط بشه بدون الفلام هم نکره رو آوردن که کردن فرید این پس اگر یه جایی دیدید نوشت معن رجلن زنگو میگی بنابر تاقی که آیه حق اش ازشون نقل کردید قولوا که نکره رو و مضافتان میارن اون واسه ایمیل اون